و شرک بزرگترین گناهی که قرآن کریم در سوره نسا آیه 48 میفرماید ان الله ها لا یقبلو اشرک بهی و یغفر ما دون لمن یشاء ان الله ها لا یقبلو اشرک خدا شرک را نمیامرزد و یغفر ما دون از لمن من یشاء ما رو میبخشه برای کسانی که بخواد و من یشرک شرک به فقد افترا اسم نظیمو اون کسی که به خدا شرک و فرزد گناه بزرگی رو به دروغ مرتکب شده و افترا بسته حالا ببینید، بنده رفتم کت بخرم به شرط شعی شرط شی چی بوده؟ جمعیت تصور کنه عجب خود عشنگی دارم پس جمعیت برای من نتره یا به شرط لا، کت وصلداری رو پوشیدم جمعیت تصور کنه عجب ظاهدی هستم باز جمعیت برای من مطرحه برای زهد فروشی دارم کار میکنم اما لا به شرطه لا به شرط است. لا به شرط یعنی چی؟ بنده پوشش احتیاج دارم پوشش اعتدال جامعه چیه من در حد اعتدال لباس خریدم می پوشم. برای من مطرح نیست جمعیت میگه به به به قد قشنگه یا به چه زاهدی داره من در حد اعتدال مثل بقیه مردم دارم زندگی میکنم این میشه حد اعتدال لذا اگر منافق شدن یعنی چی یعنی میخوانی یه جوری مردم رو به سوی خودشون جلب کنن این ریشه از شرک در میاره حالا چرا ریشه از شرکه؟ به جهت اینکه انسان عاقل وقتی کاری انجام میدهد، هدف از اون کار داره یا نداره؟ انسان عاقل هدف داره دید، غیر عاقل ممکنه کار رو عوض بکنه در روانشناسی، روانشناسا بحث کردند. میگن حتی اگر شما این تسبیر رو به دستتون گرفتید، ذکر نمیگید، یه وقت ذکر میگید، میخواید تعدادش رو بشمرید این تعداد معین تصویح، یه وقت نه خسته دارید و تصویح بازی میکنید. خود این بازی تصویح بیروده نیست، نوعی آرامش میده. ازا در روانشناسی میگن این حالت هدف داره، هدف ایجاد آرامش. یا دیدید مثلا گوشی تلفن دست شماست، با یکی دارید عرض میزنید و قلم رو کاغذ دارید بازی میکنید. با اینکه شما چیزی نمینویسید نقاشی نمیکنید. شماره تلفن طرف رو یادداشت نمیفرمایید. دارید همینجوری با خودتون سرگرمی میگن این نوعی تمرکز میاره نوعی آرامش میاره این بیهوده نیست آقل از هر کاری که انجام میدهد هدفی داره خب بیان سراغ هدف هدف رو در یک دست بندی کلی میتونیم دوتا بکنیم یا نه ببینید اگر غیر از اینه ببنده بفرمایید یک هدف خداست لاغیر دو هدف خود است، لاغه، ممکنه بگید برخی مثل مارکسیست ها یا برخی که مقدار تفکرات روشن فکری منهای مذهب دارن میگن ما خدا سرمون نمیشه، خودخواهی هم نیست، دلم برای مردم میسوزه به خاطر خیلخواهی مردم دارم این کارو میکنه، اگه برگردی یا خدمت به خلق میکنه برای رضای خدا یا خدمت به خلق میکنه که خودش رو ارضا کنه بازم برمیگرده به خود ارزایی اون بینش توحیدی نابی که ما در اسلام داریم چیه کار خود کار خلق برای خدا کردن لزاب به اونجا میرسه میگه ولو من از این کار الان رنجم میبرم بدمم میاد خوشم هم, هم نیاد اما چون خدا دوست داره من انجام میدم این میشه معنای توحید اما وقتی که ما ریشه یابی کردیم در اونجا میگه که من برای خدمت به خلق دارم این کار رو میکنم خدا خدامطرانش خودش خوشیش میاد میگه میخوام آرامش پیدا کنم کیف می از این کار این کیف کردن با دارش این کار رو بکنه این روغن چراغ ریخته رو می خواد وقت واسه بکنه نه خیر داری خود خودتو ارضا میکنی اینو به حساب خدا نگذار اما کار اگر به حساب خدا باشه چه لذت ببرم چه لذت نبرم چه ارضا بشم چه ارضا نشم چه خوشم بیاد چه خوشم نیاد مثل نماز یک وقت اونقدر ما انشاءالله اوچه پیدا کرده ایم که لذت میبریم از نماز اما نماز رو به خاطر لذت میمی به خاطر قربه به خدا می کنیم. در این حال لذت و حلاوت و عبودیت رو هم میبهمیم اما بنده در اون سطحی نیستم که از نماز خوندن لذت ببرم بلکه یه مقداری سختم هم هست اما در این حال برای رضای خدا باید بخونم یا نماز رو بخونم یک وقت در سطحی رسیدم وقتی پولی بیه مستمندی میدم مشکلش رو حل میکنم کیف میکنم به خاطر کیف کردن نمیدم به خاطر رضای خدا میدم اما یک وقت از کیفم نمی کنم خدا خوشش میاد میدم ممکنه سخت من هم هم باشه بدم اما در این حال گفت زمان مرحوم سله حسن همیان کول و بسته بود زیر شکمه زیر لباسش به شکمش رفته بود نجف خدمت مرحوم سله یه روز دو روز سه روز بعد از نماز همین اومد جلو حضرت آیت الله یه ارزی دارد بفرمایید پی سرغوشد می میلرزید، حالا باشد، ولیوش بعد از چند روز مرحوم سله حسن پر فرمود خدا عمر بده بگو کار داری با من؟ با حالا تا خدایی همدونه باز کن راحتم کن این وجوهات بدهکارم میخوام بدم دلم نمیاد هی میام میگم کار دارم دلم نمیاد پول رو بدم اینو وردار منو من راحت کن خب حالا دلشم نیاد چون خدا امر کرده باید به پردازه باید بده این حساب دیگریه اما ما وقتی هدف رو ریشیابی میکنیم میکنیم در یه دستبندی کلی یک هدف خدا برای رضای خدا ما این کار میکنیم و میریم جلو یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم چرا؟ جانان بسندد خدا دوست میداره میگم چشم اما خدا نباشد رضای خدا نباشه. برای خاص خالق نباشه. خب هدف خود میشه دیگه من وقتی نمازم تو خونه با نمازم تو حسینیه فرق میکنه هدف خدا نیست هدف چیه؟ میخوام خودمو رو کنم برای ارزای خودم جلب رضایت شما رو میخوام خب من که در کنار خدا شریک براش قائل شدم بنده نیست که برای خدا کار کند و هر نسبتی غیر خدا رو دخالت داد میشه چی؟ میشه شرک پس منافق مشرکه به یک معنا لذا و من ناس از انسانها من کسانی هستند یقولو میگویند آمنا بالله و بالیوم الاخر ایمان به خدا داریم ایمان به روز قیامت داریم و ما هم به مؤمنین اما اینا مؤمن نیستند یعنی میشود گاهی زبانا مؤمن بود اما در واقع مؤمن نبود